با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجیان تلویزیون رنگین کمان بخش پنجم گفتار در باره کس زبی رو شروع می کنم در بخش چهارم آخرایی بخش چهارم به اینجا رسیدیم که به تاریخ خیابانی پرداختیم چون گشادی به خیابانی پیوسته بود و ما هم خواستیم یه تاریخ مختصری از خیابانی رو بگیم تا ببینیم این چی بوده واقعا چه جوری اتفاق افتاده در تبریز ادامه وقایت خیابانی اینه که گفتیم که در دومه دی ماه 1290 شمسی یفرم به دستور نائب السلطنه آمد به مجلس، داخل مجلس شد، نمایندگان رو به زور از مجلس اخراج کرد، در مجلس رو بست و دیکتاتوری شروع شد از طریق یکی از کسانی که مبارزه می‌کرد، به چه مبارزه می‌کرد، هم خیابانی بود، حتی زمانی که از مجلس بیرونشون می‌کنن، میرن در بازار تهران شروع می‌کنه. با سخنرانی‌هاش رو ادامه دادن که باز افراد یپرم خان فرصت نمیدن به هر حال برمیگرده میاد تبریز وقتی میاد تبریز گستوی انجمن کوچیکی داره میاد سراغ گستوی و در این انجمن عوض میشه و به طور محرمانه با هم برنامه های به حساب بین خودشون البته نجوه میکردند سخنانی میگفتند نتیجه گیری میکردند از وضع بد مملکت کاری که در انجمنها میکنند انجام میدادند همزمان خیابانی در تبریز یک تجارتخانه ای رو باز میکنه باز هم در این تجارتخانه محرمانه مجلسی داشته و مبارزه میکرده بر علیه حکومت مرکزی حکومتی که مجلس شورای ملی عزیز مردم ایران رو درشو بسته حاضر نبودن مشروط خواهان حاضر نبودن همشون در رنج و گرفتاری بودن باغذ کردیمشون رو گرفته بود تصور میکنم میشه تصور کرد در این تجارتخانه خیابانی داره مبارزه میکنه در همین جنگ اول عثمانی ها به تبریز دست یافتند به آذربایجان دست یافتند متاسفانه وطن ما همیشه زیر پای بیگانه بود اغلب زیر پای بیگانه بود وقتی به آزربایجان دست یافتند به تبریز اومدن چون خیابانی سابقه مبارزاتی داشت یا او رو تبایید می به ارومیه اوائل 1296ه 1917ه هنوز جنگ اوله شیش ماه بعد که عثمانی ها از تبریز بیرون میرن خیابانی هم دوباره از ارومیه برمیگرده تبریز خیابانی در اون تاریخ که برمی گرده تبریز پایه حزب. دموکرات رو در تبریز میذاره شروع جنبش از همین تاریخه که از همین حزبه یکی از مسائلی که موجب شد حزب خیابانی قدرت بگیره دست راخت بیه عزب ایشون به انبار اسلحه در شرفخانه بود عبارت این بود که قوای روسیه که ایران رو زیر چکمه هاشون داشتند انقلاب بلشویکی اتفاق افتاده سران روسیه افراد خودشون رو از کشورهای دیگه خواستند از جمله قضاقان و های روسی در ایران را و اینا مملکاتو ما رو تخلیه میکنن میرن وقت پس از رفتن گویا مرکز اسدخانه خانهشون در شرابخونه تبریز اونجا بوده اصل های فراوانی داشته که میرن اون بی صاحب مونده بود همین اعصای حزب دموکرات خیابانی به این اصله خانه دست بیابند و قواهی نظامی قدرت نظامی پیدا می کنن. در این بیان یک مطلبی رو هم بگم که یکی از کارهایی که خیابانی انجام داد که به زرارش تمام شد قتلشم موجه به قتلشم بعدن اون شد این بود که در اون تاریخ که اومد به سلام حزب و تشکیل داد و جواش جواش مسلط می شد به تبریز قوای قزاق ایرانی که در تبریز بوده اینها رو برمیگردونه به ترس از کودتا یا مداخلات نظامی دیگری اینها رو برمیگردونه به مثل اونجا که اجتماع میکنن نظامیان اون موقع به نظر من باغ شمال بود مرکز نظامیان قزراغان بنابراین است تمام شهر اینا رو جمع می‌کنند میرن در مرکز خودشون اونجا که مجتمع گاه و اجتماع نظامیانه و از شانس بدش اینا رو خلق اصلاح نمیکنه اینها همینطور مسلط در اونجا باقی میمونن حالا حضورتون از میکنم که مطلب جوری شد به چه نهدی ادامه پیدا کرد <تصفيق> مخمر سلطانه در سال 1299 در فروردین 1299 قیام خودش رو شروع کرد و در این قیام تقریبا رابطهش رو با مرکز تا حدودی قطع کرد اسم آزربایجان رو عوض کرد آزادیستان گذاشت حالا در مورد این تغییر نام نظرها متفاوت گروهی میگن که در مقابل اینکه اران شمالی ما که اسمشو گذاشتن آذربایجان چون اونجا رو اسمشو گذاشته بودن آذربایجان خیابانی نمیخواست آذربایجان ما هم نام اون باقی بمونه اسم اینجا رو آزادستان گذاشته بود ولی گروهی میگن که نه اینکه آزادستان گذاشته شاید نظرات دیگری داشته من نظر هر طرف رو در اینجا میگم به هر حال در این میان مهدی قلخان هدایت رو مرکز به عنوان والی تبریز میفرسته به تبریز قبل از اون دو والی اومده بودن ولی خیابانی بهشون راه نداده بود خود خیابانی رفته در آلیقاپو میشینه قاپو جای مکان والیهای تبریزه وقتی مهدی قولی خان که میاد سه بومین به صلاح دورست که به عنوان والی وارد تبریز میشه آقای مهدی قولی خان هدایت خیابانی اجازه نمیده بیاد در حالی قافو بشینه و بهش پیشنهاد میکنه که بهتر که برگردی خیابانی میرود و با تزاقان که حالا دیگه از اینا جدا شدن در یک منطقه به اصلا مجزایی دارن میشینن با اینا تماس میگیره مهدی بلخان و ساخت و پاخت میکنه در شب بیست و هفت زیحجه خیابانی از بخت بدش از آل قاپو که اونجا سکونت میداشت به خانه خود میره اون شب در خانه خودشه در همون شب، صبح همون شب، روز قزراغان در حقیقت یک کودتایی میکنن به دستور هدایت. اینا تبریز رو میگیرن. خیلی سریع، خیلی راحت. و بعد به خانه خیابانی حمله میکنن و اونجا رو غارت میکنن. ولی گویا خیابانی وقتی شنیده بود که قزراغان حمله کردند از خانه خودش بیرون اومده بود در خانه یکی از همسایگانش پنهان شده بود و این وقتی که میرفته اونجا یک گدایی بنابه قول کسدری گدایی اینو دیده بود خیابانی رو این گدا میاد مکان پنهان شده خیابانی رو به قضاقان میده قضاقان به اون خونه حمله میکنن خیابانی در زیزمینی بوده ای داشته تیرندازی میکنه و اینا تیرندازی میکنن و متاسفانه خیابانی شیخ خیابانی رو میکشند و هر حال برگردیم به زندگی کسروی تاریخ از خیابانی حضورتون ارس کردم کسروی در سال 1296 گفتم حضورتون که شمسی 1296 شمسی به خیابانی پیبست در این بین در خاطراتش نبشتی با خیابانی درگیری داشت تزاده اعتقاد داشت عقیدش نمیخون با خیابانی به همین دلیل در 1297 از خیابانی بورید و سپس در شهریور 1298 در عبلیه تبلیز استخدام شد پس از قیام خیابانی قیزش خیابانی که حضورتون از کردم 17 فروردین 1299 بود به قول کسروی خیابانی تمام مخالفان عقیدتی خودش رو میگرفت تنبیه میکرد حالا زندانی میکرد کسروی هم یکی از آنها بود و جانش در خطر بود و در جای جای کتابش نوشته که افراد خیابانی دنبالش میکردن بنابراین ناگوزی شد در روز 21 اردی بهش ماه محرمانه از تبریز به قصد تهران خارج شد و در تهران ابتدا به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان ثروت تدریس عربی کرد خب حالا ببینیم چگونه به استخدام این مدرسه ثروت در اومده است تمام کارهای کسرگی قابل بیان زیباست رفتارش در چهارچوب رفتار معمولی نمی گنجد. خارج از این رفتاره در تهران وقتی آمد تهران پنشیش ماه بی بعد در مدرسه ثروت استخدام شده ارز کردم که ببینیم چجوری استخدام شده خودش در کتابش در مورد جگوننگی استخدامش می نویسه که روزی به وزارت فرهنگ رفتم در اون تاریخ وزارت آموز پرورش رو وزارت فرهنگ می گفتن قبل از اون معارف می گفتن بعدن هم معارف می گفتن برحال اینا اسبابی اون وزارت خانه بود آه آه می نویسه که روزی به وزارت فرهنگ رفتم آقای الیسخر حکمت رئیس کارگزینی بود و از دانسته من پرسید و چون مرا با امامه و عبا می دید نمی باور کند که من انگلیسی می‌دانم گفت حاضرید کسی شما را امتحان بکند؟ ها. گفتم نخواست آن کس را امتحان می کنم و سپس امتحان می دهم گفت چطور؟ گفتم در دیکسیونرهای انگلیسی 450,000 هزار کلبه هست که یک انگلیسی دان بیش از ده هزار آنها را نخواهد دانست و نباید بداند اکنون کسی بخواهد مرا بیازماید چه بسا از آن کلمه‌های های دیکسیونری برگزیند و بخواهد مرا درمانده و آنماید این هست بهتر است. من پیش افتم و او را درمانده وانمایم ادامه میدهد حکمت گفت همین خود آزمایش است که شما انگلیسی میدانید ببخشید می نویسد که سپس کمی با هم انگلیسی صحبت کردیم به مدت پنج ماه کسوی در همین مدرسه ثروت درس عربی می میگفت تا آنکه دوباره به عدلیه برگشت کسوی علاقه زیادی به عدلیه داشت اولین معمولیت ادلیاش در تبریز بود که باز هم جالبه خواهیم دید چگونه در اونجا هم با فساد و فاسد درگیر شده در همون دبیرستان در ثروت بوده مدرسه ثروت بوده که در زمسران 1299 ادلیه در تهران او رو استفاده میکنه همون دادگستری اون موقع ادلیه میگفتند و بعد آزمه به تبریز میفرسته در تبعیض به انوان عضویت استیناف و عدلیه میاد به تبعیض و در تبعیض فقط سه روز بود که سه هفته بود که خدمت میکرد که سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد و کودتای سید ضیاءالدین طوابطه‌ای پیش اومد و رضاخان تمام عدلیه ها بسته شد و این در سوم اسفند 1200 نمدونه بود کسیدی در این سه هفته در خاطراتش از زشتی های این عدلیه عدلیه تبریز گفته چه خاطراتی در این موقع در این مدت کوتاه به دست ورده در ذهنش بوده در کتابش نوشته میگه می که اشاره میکنم به گفتهای خودش یکی از وکیلان دادگسته روز که میرسه به عدلیه یا روزهایی که به عدلیه. یکی از وکیلان دادگستری سیدی بود از روز خانی دست کشیده و به وکالت آمده بود همان روز نخست در میان احوال پرسی چون این گفت در آن دوسیه نزهت و دوده سهم شما رو هم نگاه داشته ایم خواهم آورد گفتم قباهت دارد یکی دیگر جلوی هم را گرفت و گفت یک دوسیه هم داریم مال اردبیلی هاست البته خدمتتان خواهم رسید با پرخاش گفتم بگذارید از راه برسم تا به فساد دعوتم کنید کسیوی در مورد فساد و قضاوت فساد قضاوت که اخلب از ها دو آن بودن اغلب ملاحا دو آن بودن ادامه میده و میگوید در همان روزها یکی از داوران دادگاه که امامه سفیدی نیز داشت مرا برای نهار به خانهش دعوت کرد روز عادی رفتم و پس از نهار به سخن پرداخت و گفت در محکمه ما چند تا دوشیه 100 هزار تومانی و دویست هزار تومانی هست که باید شما بخوانید و رعیش را بدهید ادامه داد میگه که رئیس دادگاه این میگه با آن عوض روی هم ریخته با یکی از به کسانی که مراجعه کردن روی هم ریخته و هایی گرفتن که ابتال حق مردم کنن های یعنی اونا که ایشون رو دادن که اصلاح پول بگیرن طرف ها نیست حاضرن پول بدهند اگر شما با من هم دست روید ما هم از این راه پول میگیریم و نمیگذاریم حقشان ضایع شود میگوید در جواب گفتم من دوسیه ها را که خواهم خواند به آنچه فهمیده خودم است رأی خواهم داد هیچگاه پیروی از رئیش یا از دیگری نخواهم کرد در باره پول گرفتن هم نمیخواهم که نامش را پیش من ببرید. بعد خواهیم دید که در ادلیه تهران و شهرستان های دیگر چندازه این مرد مبارزه کرد. سپم اسفند اتبال افتاد همونطور کهعرض کردم در ۲ اسفند بیست روز بعد به دستور صد زیاه دین تبا تبایی داگستری ها تعطیل شد و داگوسترری تبعیزم تعطیل شد و باز کس سرری به بی پولی افتاد دو مشکل دیگری هم در این زمان که در این مدتی که پس از بیکاری از عدلیگه در تبریز بود به کسیدی روی داد یکی از مشکلات این بود که برادرش برای, برای کاریابی داشتن یک کاری به باکو رفته بوده به قفخازیه در اون تاریخ متاسفانه در آن انقدر فقر و فاقه بود که مردم میرفتن ور عرص کار میکردند با گفتن حتی گاهی سد هزار نفر ایرانی در اون طرف داشتن کار میکردند برای اینکه زندگیشونو بجرکنن کس زوی برادرش برادر متفسطش خودش میگرفته اونجا یک مغازهی باز کرده تا زندگیش میگه مغازه نگرفته و شکسته شده مغازش رو بسته خب بر میگرده تبریز سر راهش شاه ها خدمتش رسیدان گرفتن تمام زندگیش ازش گرفتن لباساش هم گرفتن می نویسد که او لباس کرباس بر تن و با پای پیاده به تبریز رسیده بود کسروی برای بار دوم مجبور میشه که کتاب رو بده به برادرش فدای خانواده بکنه دفعه اول حضورتون عرض کردم در یکی از بخشا که چون بیکار شده بود بعد از ملایی درامدی هم نداشتن کتاب هاش رو دونه دونه میفروخت و بعد همش رو فروخت و یه دستگاه جوراب بافی مینا رو در گذشته حضرتون عرض کردم اون موقع کتاب یه جور رفت حالا هم داد دست برادرش هاش برو یه مغازه کتاب فروشی باز کن یه هم یکی دیگه هست خب یه مطلب دیگه هم در اینجا اتفاق میفته این هم همسر است که جوان هم بوده خیلی هم کستویی دوستش داشته علاقه من بوده اون هم فوت میکنه و این دو مسئله کستویی رو خیلی آزار میده در این مدتی که او در تبریز بوده شش ماه در تبریز پس از اون تاریخ زندگی کرد پس از تعطیل عدلیه تبریز و بلاخره برای پیدا کردن زندگی معیشت زندگی دوباره آزم تهران شد در روز 29 شهریور 1300 از تبلیز برای یافتن کاری به سوی تهران حرکت کرد در تهران با آکیسی توهی با وضع اقتصادی بد زندگی میکرد کستوی همیشه اینجوری بوده هرگز به دنبال پول زیاد نرفته بود ایدعالش مبارزه بود ما نداریم در تاریخمون در تاریخ اصر جدید ایران ما چنین شخصیتی رو نداریم کستوی داره در تهران به دنبال کاره. پس از گفتگوی فراوان در آبان ماه او را استخدام کردن در دادگستری در عدلیه به انوان عضو استیناف عدلیه آزم مازندرانش کردند او در روز 26 ماه آبان ماه از تهران به همراهی کاروانی جالبه اینجا هم زندگیش فوقلاده جالبه از تهران به همراهی کاروانی عزب مازندران به عزب مازندران حرکت کرد خب یک کاروانی داره میره و معمور دولته از هم داره تون کاروان سوار شده می نویسه که در حوالی فیروزکو غذاقان رضاخان که برای جنگ با امیر, معی... امیر معید سوادکوحی آن خطه بودند تمام اصبه های کاروان رو از آنها گرفتن حصب ناقص داشتن مثله حساب شده نبود که قضاق قدرت داشت از مردم حصباشو میگرفت به همین سادگی میگه تمام حصبها رو گرفتن از جمله حصبی منه کسیدی وسایل زندگیش رو با خودش میبرد از طریق یک کاروان دیگری به مازندران میفرسته و خود جالبه و خود از همین منطقه همون فیروزگو با پای پیاده آزم مازندرانش آزم سادی میشه که مرکز مازندرانه زخنهای جالبی از این پای پیاده از این مسافرت با پای پیاده نوشته است گروسنگی،, گروسنگی ها کشیده پولی هم نداشته بتونه در قهوه خانه های سر راه صد جو بکنه علاوه بر این میگه که زمین باران آمده بود زمین خیس بود باطلاقی بود میگه کفش های اونجا خراب شده بودند پاره شده بودند در قهوه خانه ها میشسته اول کفش میشسته بعد وسیله تحییه میکرده تو این کفش به دوزه بهتون ادامه بده راه از شدت گرسوننگگی می نوسی که در تور راه کهشه یه گیاه میخوردم گیاه پیدااد می کردم میخوردم و بالاخره با هزار مصیبت کصی به ساری میرسید. بخش پنجم رو بنده در اینجا پایان میدم تا فرصت دیگر و بخش دیگر بیروز باشید.